دوره انبیا. به نام الله که بخشاگنده و با رحمت است روز حساب مردم نزدیک شده اما آنها همچنان در غفلت خیش حیران هر آیب و حمد جدیدی که از سوی پروردگارشان آمد، آنها در حال بازی روزمرگیشان شنیدند و پشت سر انداختند. قلبهایشان سرگرم چیزهای بیارزش است و جاهلانه به خود ظلم می‌کنند. و این ظالمان در گوش هم نجوا می‌کنند و می‌گویند مگر غیر از این است که پیامبر هم بشری مثل شماست و آن که می‌بینید باز به طرف جادو می‌روید؟ گفت پروردگار من از هر سخنی در آسمان و زمین باخبر است زیرا او شنوا و داناست آنها گفتند آنچه که میگوید وحی خدا نیست بلکه خوابهای آشفته است بلکه دروغی است که به خدا نسبت میدهد بلکه او شاعر است اگر راست میگوید برای ما معجزهی مثل معجزات پیامبران پیشین بیاورد قبل از آنها اولوی شهری که به حقایق ایمان نیاوردند نابود کردیم آیا اینها حقایق را باور میکنند و ما هیچ پیامبری قبل از تو نفرستادیم مگر مردانی که به آنها وای کردیم اگر نمیدانید از اهل حقیقت بپرسید بدانید که ما پیامبران را بدنهایی ندادیم که به غذا نیاز نداشته باشند همچنین در دنیا آنها را جاودانه نکردیم آنها هم بشری مثل شما هستند سرانجام هم به وعده که به پیامبران داده بودیم وفا کردیم و آنها و هر کس دیگر را که صلاح دانستیم از بلا و مصیبت ها نجات بخشیدیم و کسانی که عمر و امکانات خود و مردم را هدر میدادند دادند کردیم کتابی برای شما نازل کردیم که ذکر شما و راز موفقیت شما در آن است پس چرا در آن تعقل کنید؟ چه بسیار هایی که به خاطر ظلمشان نابود کردیم و به جایشان اقدام دیگری نشاندیم آنها هنگامی که احساس کردند عذاب ما آمالی است از دیارشان پا به فرار گذاشتند فرار نکنید برگردید به همان زندگی پر و برقتان شاید فقرا به در خانه هایتان بیایند و از شما چیزی بخواهند گفتند ای بر ما که ظالمانه زندگی کردید پیوسته همین کلام لغلقه‌ای زبانشان بود تا اینکه ما همشان را چون که زرد درو شده و خاموش ساختیم بدانید ما آسمان و زمین و آنچه بین آنهاست برای بازی خلق نکردیم. اگر به دنبال سرگرمی و بازیچه می بودیم، توانایی آن را داشتیم که خودمان ای خلق کنیم و نیاز به این همه صبر و گذشت و ارسال پیامبران و معجزات و هدایت و غیره نبود. بلکه اراده کردیم با توجه به اختیاری که به شما داده ایم حق را بر باطل بکوبیم تا آن را متلاشی کند. آنگاه خواهید دید که باطل رافتنی است پس وای بر شما به خاطر توصیف هایی که از خدا میکنید هر که در آسمان ها و زمین است از آن اوست و هر که نزد اوست نه از عبادتش تکبر میورزد و نه خسته میشود شبانه روز تسبیح خداوند را میگویند و سستی نمی کند. آیا آنها خدایانی زمینی اختیار کردند که میتوانند توانند خلق کنند و پدیده را منتشر نمایند بدانید اگر خدایان دیگر چه از نوع زمینی و چه آسمانی در به وجود آوردن آفرینش با الله شریک میبودند، بودند بیشک فساد و تباهی زمین و آسمان را فرا می گرفت خدایی که پروردگار عرشه است از وصفی که میکنند مبراست هیچکس کس نمیتواند خدا را مورد بازخواست قرار دهد اما دیگران نسبت به عملکردشان بازخواست خواهند شد آیا آنها به جز خداوند بزرگ خدایان دیگری را برگزیدند اگر چنین است بگو دلایل را بیاورید این سخن کسانی است که با من هستند و سخن کسانی است که پیش از من بودند بدانید که اکثر آنها حق را نمیشناسند و از آن گریزانند ما, ما هیچ پیامبری را پیش از و نفرستادیم مگر آنکه به او وحی کردیم که هیچ معبودی جز من نیست پس فقط مرا پرستش کنید و ادعا کردند خدای رحمان فرزندی چون عیسی مسیح و ازیر و یا از جنس فرشتگان اختیار کرده است خداوند سبحان از این اوها مبراست است آنها فقط بندگان گرامی و محترم خدا هستند در سخنگفتن از خدا پیشی نمی گیرند و همباره به دستور او عمل می کنند. خدا از آینده و گذشتشان با خبر است و آنها شفاعت کسی را بدون رضایت و اجازه خدا نمی کنند و همباره از حیبت او بیمناکند بیشک هر کس از آنها بگوید به جز او من هم خدا هستم جزایش جهنم است و ما اینچنین کیفر ظالمم را می دهیم آیا منکران حقیقت نمی‌دانند که روزی درهای آسمانها و زمین بسته بود؟ نعمت و برکت حیات نازل نشده بود و ما آنها را گشودیم تا حیات و زندگی جریان پیدا کند و از آب هر چیزی را حیات و زندگی بخشیدیم آیا باز هم حقایق را باور نمی کنند؟ و در زمین، کوه‌های ثابت و پاورجایی قرار دادیم تا مایه ثبات و آرامش انسان‌ها باشند و در آن دره‌ها و راههایی ایجاد کردیم تا راحتتر به مقصد رسند و آسمان را چون سقف محفوظی به وجود آوردیم تا آدمیان در امنیت زندگی کنند اما باز آنها از آیات آن روی گردانند و حاضر به درک حقیقت و ایمان به آن نیستند او کسیست که شب و روز و خورشید و ماه را خلق کرده است و هر کدام در مدارخی شناورند. قبل از تو ما هیچ بشری را زندگی جاودان ندادیم. آیا تو که پیامبر هستی بمیری و آنها جاودانه باشند؟ بدانید هر کس مزه مرگ را میچشد. و ما شما را هم به امور شر و هم به امور خیر امتحان می و انگاه با دستاوردتان به سوی ما باز خواهید گشت قافران چون تو را ببینند به تمسخرت میگیرند و میگویند آیا این همان کسی است که در باره خدایان شما سخن می گوید حالا که خودشان یاد خدای رحمان را انکار می انسان عجول و شتاب کار آفریده شده است. عجله نکنید به زودی نشانهایم را برایتان نمایان خواهم کرد. میگویند اگر راست میگویید این وعده کی تحقق می آمد؟ آنگاه که منکران حقیقت بی هیچ یاوری نتوانند آتش الهی را از پشت روی خود دف کنند خواهند فهمید بلکه این مجازات الهی، به طور ناگهانی گرفتارشان خواهد کرد در حالی که نمی توانند آن را دفت کنند و نه مهلتی به آنها داده می شود بدان که پیامبران قبل از تو را نیز تمسخر کردند اما سرانجان آنچرا به باد تمسخر می گرفتند دامنگیرشان شد بگو کیست که بتواند شما را از مجازات شبان روزی خدای رحمان محفوظ بدارد با این وجود آنها از یاد پروردگارشان روی گردامند شاید به جز ما خدایان دیگری دارند که از عذاب الهی مسونشان می‌دارند. بدانید که آن خدایان دروغین توانایی مراقبت از خود را ندارند چرسد به دیگران از جانب ما نیز پناهی نخواهند داشت ما اینها و پدرانشان را از نعمتهای زندگی بهرهمند کردیم و عمر طولانی دادیم با این وجود آیا درک نمی کنند که ما عمر زمین را از جهات مختلف کم میکنیم؟ آیا آنها بر امور مسلطند؟ بگو من فقط به واسطه وحی به شما هشدار دهم اما آنها گوشهایشان کر است و از این هشدارها نمی‌هراسند اگر شمی از عذاب پروردگارت را درک کنند، فریاد برمیآورند آورند، ایوای بر ما که ظالمانه زندگی کردیم. ترازوهای عدالت را روز قیامت برپا می کنیم تا به هیچ ظلمی روا نرود. اگر عمل کردی، به قدر دانه خردل باشد، را به دقت محاسبه خواهیم کرد. بدانید که ما برای حساب کشیدن، هستیم. ما به موسا و هارون کتابی عطا کردیم که هم ملاک تمایز حق از باطل است و هم روشنی و پند است برای آنها که حرمت خداوند بزرگ را نگاه می‌دارند. همان کسانی که در نهان نسبت به پروردگارشان بیمناکند و از بیامت و محاسبه عمل کردها می‌هراسند. این قرآن با برکت هست و ما آن را نازل کردیم آیا شما آن را این می کنیم؟ پیش از این نیز به ابراهیم نیروی رشد و آگاهی مورد نیازش را عطا کردیم و به موقعیت او دقیقاً آگاه بودیم و هنگامی که به پدر و قومش گفت این مجسمه هایی که به پرستش آنها دلبستهی چیستند جواب دادند از وقتی چشم باز کردیم پدرانم را دیدیم که آنها را می‌پرستیدند ابراهیم گفت هم شما و هم پدرانتان در یک گمراهی آشکار بودید گفتند آیا نکته حقی برای من آورده ای یا ما را به بازی گرفته ای ابراهیم گفت آری نکته حقی آوردم بدانید که پروردگار شما همان پروردگاری است که آس ها و زمین را آفریده است و من بر این ادعا گواهی میدهم. به الله سوگند چون بروید نقشهی برای نابودی بطخایتان خواهم کشید سرانجام ابراهیم همه به بجز بزرگترینشان را خورد کرد تا به سراغ آن برود گفتند چه کسی چون این کاری با بطخای ما کرده است هر که باشد ظالم است جواب دادند شنیدیم جوانی که به او ابراهیم میگویند چنین چون این کرده است گفتند او را نزد انظار عمومی بیاورید تا مردم هم شاهد محاکمهش باشند آنگاه گفتند ای ابراهیم آیا تو این کار را با خدایان ما کرده ای؟ ابراهیم گفت بلکه بزرگترین بطا این کار را کرده باشد او حاضر است و می توانید از او سوال کنید البته اگر بوتها جوابتان را بدهند آنگاه به درونشان رجوع کردند و با خود گفتند حقا که شماها ظالمید آنگاه وجدانشان را زیر پا گذاشتند و گفتند تو خوب میدانی که این بوتها حرف نمیزنند ابراهیم گفت پس چرا به جای خداوند چیزهایی را میپرستید که نمیتوانند به شما سود برسانند و نزیانند وای از انحراف شما و از معبودهای دروغینی که به جای الله میپرستید چرا تعقل نمی گفتند اگر اهل عمل هستید او را بسوزانید تا با این کار خدایانتان را یاری کرده باشید گفتیم ای آتش برای ابراهیم سرد و مایه سلامت باش خواستند در مورد او نیرنگ دیگری بیندیشند که ما آنها را دوچار بدترین خسارتها ها کردیم و ما ابراهیم و لوت را نجات دادیم و آنها را به سرزمینی که برای جهانیان پربرکت قرار داده ایم بردیم و به ابراهیم، اسحاق و متعاقب آن یعقوب را عطا کردیم و همه آنها را انسانهای سالح و نیکوکار قرار دادیم و آنها را پیشوایانی قرار دادیم که تحت امر ما، مردم را هدایت می کردند کارهای خوب و اقامه نماز و پرداخت زکات را به آنها وحی کردیم و بیشک همه آنها ما را بنده بودند و به لود حکمت و علم عطا کردیم و او را از شهری که اهلش مرتکب کارهای زشت می شدند، نجات دادیم زیرا آنها مردمی بدکاره و زشت سیرت بودند و او را به بیکران رحمت خود داخل کردیم زیرا در زمره سالحان بود و نو را یاد کن که پیش از اینها به درگاه ما دعا کرد و ما نیز دعای او را اجابت کردیم و او و خانواده را از اندوهی بزرگ نجات دادیم و او را بر مردمی که آیات به حق ما را تکذیب میکردند پیروز کردیم بدانید آن قوم عملکرد بدی داشتند و به همین دلیل همشان را غرق کردیم و داوود و سلیمان را یاد کن آن هنگام که در مورد گوسفندان آن قوم که به هنگام چرای شبانه چشاری را خراب کرده بودند داوری کردند و ما نیز شاهد بذاوات آنها بودیم این ما بودیم که حکم درست را به سلیمان تفهیم کردیم و این اینچنین به همه آنها حکمت و دانش عطا کردیم، خوها و پرندگان را در اختیار داوود گذاشتیم، آنچنان که با هم تسبیح خداوند بزرگ می گفتند و ما بر همه این کارها توانا بودیم. صبح القدس. صبح القدس. و به او یاد دادیم که چگونه برایتان زره بسازد، تا هنگام جنگ بپوشید و محفوظتان بدارد آیا شکر این نعمتها را به جا می آورید؟ باد را در اختیار سلیمان قرار دادیم تا به فرمان او در سرزمینی که با برکتش کرده این بوزد و این ماییم که از همه چیز آگاهی. و من و حتی گروهی از شیاطین را در اختیارش گذاشتیم تا برایش در دریاها قواسی کنند و عامل دستورات دیگرش باشند و در تمام این موارد ما مراقب شیاطین بودیم که سرکشی نکنند و ایوب را یاد کن آنگاه که پروردگارش را دعا کرد و گفت پروردگاه را بلایی دامنگیرم شده در حالی که تو ارحمل راقمین هستی دعای او را اجابت کردیم و بلاها را از او دور نمودیم و خانواده اش را به او بازگرداندیم و همانند آنچه را از دست داده بود به او عطا کردیم و این کارها رحمتی از سوی ما بود تا عبادت کنندگان همواره پند بگیرند بدان که اسماعیل و ادریس و ذوالکفل همشون اهل صبر و استقامت بودند و آنها را در حوضه رحمت خیش داخل کردیم زیرا همشان عمل کردی نیک و صالح داشتند و الا و زنون یونس را یاد کن هنگامی که خشمگینانه از میان قوم خود برفت و گمان کرد که ما بر او سخت نمیگیریم آنگاه که در شکم نهنگی جایش دادیم از اعماق تاریکی فریاد برآورد که ای خدای پاک و منزه هیچ معبودی جستو نیست و من اعتراف می کنم که از جماعت ظالمان بودم. ما نیز دعایش را اجابت کردیم و او را از غم و اندور رها ساختیم. بدانید که ما اینچنین اهل ایمان را نجات می دهیم. و زکریا را یاد کن هنگامی که پروردگارش را نداداد پروردگارا مرا تک و تنها مپسند و وارثی به من عطا کن هرچند که تو خود از هر وارثی بهتری پس دعای او را نیز اجابت کردیم و فرزندی به نام به او بخشیدیم و برای این کار همسر نازای او را بارور کردیم زیرا آنها همباره در کارهای خیر و خدمت شتاب می و همیشه به درگاه ما از روی بیم و امید دعا می کردند و در برابر ما خاشع و فروتن بودند و مریم را یاد کن که دامان خود را از بی افتی پاک نگاه داشت و ما نیز از روح خودمان در او دمیدیم و هم او و هم فرزندش عیسی را معجزه بزرگی برای جهانیان قرار دادیم این ها که وان اشاره کردیم امت شمایند که امتی واحدند و بدانید که من پروردگار شما هستم پس فقط مرا پرستش کنید اما جماعتی کارشان را به تفرقه کشاندند و این امت واحد را فرق فرقه کردند بدانید که همتان به سوی ما بازخواهید گشت هر با ایمانی که عمل کرده نیکی داشته باشد پاداش تلاشش زایع نخواهد شد زیرا ما بی و کاست همه را می نبیسیم. بر اهل دیاری که نابودشان کردیم حرام است و آنها باز نمیگردند. مگر آنکه راه بر یعجوج و معجوج باز شود و آنها از هر ارتفاعی سرازیر کردند چون وعده حق نزدیک گردد در آن هنگام چشمان منکران حقیقت مات و مبغود خواهد ماند در حالی که می‌گفتند ای وای بر ما که در غفلت به سر می‌بردیم و ظالمانه زندگی می‌کردیم شما و آن چیزهایی که به جای خدا می‌پرستید هیزمهای جهنم بود پس در آن وارد شدید اگر آنها واقعا خدایان بودند به جهنم وارد نمی‌شدند اما همه دروغینند و جاودانه در جهنم خواهند بود آنها در جهنم فریاد میکشند اما هیچ جوابی نمیشنوند اما انسانهای شایسته‌ای که به آنها وعده نیک داده‌ایم همشان از این جهنمیان بدورند آنها صدای آتش دوزخ را نمیشنوند زیرا در جایگاه امنی قرار دارند و هرچه بخواهند جاودانه برایشان ممیز وحشت بزرگ روز قیامت آنها را غمگین نمی کند. بلکه فرشتگان به استقبالشان می روند و میگویند این همان روز خوبی است که به شما وعده دادند روزی که آسمان را چون توماری در هم بپیچیم و همان گونه که در ابتدا همه چیز را شروع کردیم دوباره آن را بازگردانیم تحقق این وعده بر اهده ماست و یقینا این کار را انجام خواهیم داد ما در زبور قبل از تورات مقرر کردیم که وارث زمین بندگان شایسته خواهند بود در این نکته ابلاغ روشنی برای مردم خدا پرست است و ما الا رحمت ای پیامبر ما تو را فقط برای رحمت جهانیان فرستادیم بگو فقط به من وعی می شود که خدای شما خدای یگانه است آیا تسلیم او می و اگر از حقیقت روی گرداندند بگو شاهد باشید که همه شما را آگاهی یکسان دادم و من نمیدانم وعده عذاب الهی شما دور است یا نزدیک براستی خدا هم به آنچه آشکارا می آگاه است و هم به آنچه کتمان می کنید و نمیدانم. شاید این ماجرا آزمایشی الهی و مهلتی معین شده برای شماست. گفت گفت پروردگارا به حق حکم ما و پروردگار بخشاینده ما برغم آنچه میپندارند باز همه از او یاری میجویند قال رب بالحق و ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العلي العظيم راست گوشت خداوند بلند مرتبه بود عزیز